بعد از اینکه الله جل بیان فرمودن به صورت کمال در سوره های گذشته هم توحید را و نفی شرک را بعد از اون می فرماید که اکنون به صورت علنی اعلام مقاتع بکنید این تقریبا جز اولی سوره های مکی هست اعلام مقاتع بکنید با کفر که ایک کفر ما با خدایان شما دیگه هیچ ارتباطی نداریم از این به بعد قط رابطه من و اونها رو عبادت میکنیم نه برای اونها تعظیم قائل هستیم شما هم خدای ما رو عبادت نمیکنید قل یا ایها الكافرون ای کافران لا اعبد ما تعبدون من عبادت نمیکنم اون اونچه که شما عبادت میکنید اون خدایانی که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم ولا انتم عابدون ما اعبد و نه اینکه شما عابدیید شما عبادت میکنین خدایی که من عبادت میکنم شما به گمان خودتون عبادت میکنین ولی این درد نمیخوره نمیخوره خدای من این عبادت را قبول نداره که عبادت او آمیخته با عبادت غیر خدا باشد لذا شما هم عبادت نمی کنی. شما دلتون خوشه این در حال حاضر است ببین تکرار نیست ولا انا عابد ما عبدتم ايه في الاستقبال اس اوليرا في و بنسيت فل في و در آینده هم من عبادت کننده نیستم ما عبدتم اونچه که شما عبادت میکنید و در آینده هم شما هم عبادت نمی کنید ما اعباد اونچه که من عبادت چون که شما بالاخره تصمیم ندارید این اون کفاری هست که اونها مصر بر کفر و شرک هستند لكم دينكم ولي دین پس این سلام متارکت است یعنی من دیگه از, از این به بعد با دین شما هیچ کاری ندارم دین شما برای شما و دین من برای من